بعد از اینکه شما اعلام مقاطع کردی با دشمنان و خداوند شما را فتح و پیروزی داد و دشمنتون را از بین برد الان توحید را شفاف اعلام کنید الان دیگه خفایی نباشد آشکارا علنی قل هو الله أحد. بگو اون الله أحد هست یعنی در ذات و صفات و افعال خودش یگانه است، هیچ شریکی ندارد. بتهایش شما کار نیستند، بتهایش شما شریک او نیستند. الله صمد، الله بینیاز هست. الله از همه نیازهایی که مردم دنیا دارند، بقیه مخلوقات دارند، الله بینیازه صمد. به چه کسی گفته میشه؟ میگویند که ما یسمد ای ایقصد ایله فی الحوائج سمد به اون ذاتی میگویند که همه در حاجتها به او رجوع میکنند اون چون بینیاز است همه نیازمندان به او مراجع میکنند حتی انبیاء، اسفیاء، اولیاء، صلحا امامان همه از خدا میخواهند و از خدا طلب میکنند پس همه محتاجند، همه نیازمندند و او چی هست؟ بی نیاز هست اون ذاتی هست که نیازمندان به او رجوع میکنند لم یلد ولم لم یولد و لم یکل احد اون چنان ذاتی هست که لم یلد نه فرزند آورده و لم یولد و نه خودش زائده شده و از مادر متولد شده الله عز و هو الاول والآخر والظاهر والباطن او قبل از همه بوده او از پدر و مادر به دنیا نیامده و از او هم پدر و مادر فرزند به دنیا نیامده چون این تولد و تناسل در واقع دلیل ضعف است دلیل عجز هست دلیل ناتوانی است شما هر که باشید هر اندازه قدرت داشته باشید اسای پیری لازم دارید فردا پیر بشید یک فرزند لازم دارید پس فرزند ولو اینکه قوی باشی ولی برای نیاز فردایت هست یعنی که همین جا در همین جوانی هم نیاز به محبت دارید نیاز به فرزندی دارید که همیشه با او محبت کنید با او مشغول بشی پس بازم نیاز دارید فرزند داشتن ویا یا اینکه فرزن بودن پدر هر دو دلیل نیاز هستن پدر نیاز به فرزند دارد فرزند نیاز به پدر دارد اما الله تعالی بینیاز هست به بی همین خاطر لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفوان احد هیچ کسی کفوی الله نیست یعنی برابر الله نیست صفات خدا را ندارد کفوی این معنی هست اون چیزی که خدا دارد مخلوقات نداره مثلا خدا خالق است هیچ کسی خالق نیست خدا رازق است هیچ کسی رازق نیست خدا عالم الغیب است هیچ کسی صفاتی که مخصوص خدا هستند در قرآن این صفاتی که بنده گویم. در تک تک آیات قرآن مجید اثبات شده که اینا مخصوص خدا هستند غیر خدا نیست نداره این صفات را خدا نافع و دار هست. غیر از خدا هیچ کسی نیست خدا سم و بصیر است غیر از خدا نیست پس ولم یکن له کفوان احد مانش اینه که هیچ کسی کفوی الله نیست یعنی مثل خدای عز و جل ندر ذاتش و در صفاتش همانند خدای تعالی نیست صدق الله مولانا العظیم